زو عليه غزوه تردي بجند الكافر ودعو زاد خلافتي الاسلاميه ومجاهديهم زاد هر كفر نظام فر خلاف جهادكم عليه غزوه تردي بجند الكافر ودعو صليل صوالف يشفي صدور المؤمنين لن يرجع المجد التليد بغير اساد العلم واستل هنا على الجهاد على الثغاس أي جوانان غيور اسلام بیایید وقت آن رسیده که قانون الله را در سرزمین الله نافذ بگردانیم و پرچم سیاه را بلند کرده و خنجر عمری را بر سینه های دشمن بکوبیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين برادران ومسلمانان عزيز دين اسلام دين معياري وقائم بهز وبدون انهج يا نزام در الله جل جلاله قابل قبول نیست الله جل جلاله فرماید وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين کسیکه بخیر از اسلام دینی دیگر دي را اختیار کرد قانون و نظام و دستور دیگر را اختیار کرد وقت از آن قبول نمیشود و در روز اخره از زیانکاران میباشد و در این تمام نظام های حاکم برای په ضد قانون نظام اسلامی ایجاد شده است اگر که آن دیموکراسی یا جمهوری باشد و یا سیکولر کمونیزم و یا سوسیالیزم باشد و یا دهریت و بیدینی باشد و یا نشنلیزم و قومیت و وطنیت باشد و دیگر نظام های کفری و شرکی باشد قبول کردن این همه ها دفاع کردن از این همه نظامها فیصل کردن بالای این نظام ها و محبت کردن به این الله جل جلاله است و از دین خارج شدن است و صراحتن کفر الله جل جلاله می فرماید و لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون بسیار جای تاسف است مسلمان مصروف خدمت به این نظامهای های کفری هستند کسی بخاطر دیمکراسی خدمت می کند کسی بخاطر نظام سیکولر کار می کند کسی بخاطر کمونیسم و سوسیالیزم بسیار به علاقمندی فعالیت می کند بخاطر محکم کردن این نظام های تاغوتی کفری تنظیمها را ایجاد کردن و شوراها را ایجاد کردن و مستصاد فعالیت می کند و بنام جامعه مدنی فعالیت می کند و ها را ایجاد کردن به های مختلف بنام های مختلف به اشکال مختلف به این نظامهای کفری تقویت می دهن بخاطرت یک چند پول و پیسه مزدوری غرب را اختیار کردن و ایمان خود را بفروش رساندن عزت اسلامی و ننگ را و قصه آبا و اجدادشان را سادگی تعبیر میدهند خراسان آن قسمت از زمین جهان هست که در طول تاریخ قصه عزت و شجاعت و قهرمانی در تاریخ سرزمین در شده است با تأسف میگویم و صدای خود را بالای مسلمانان خراسان بلند میکنیم ای مردمی مسلمان ای مردمی با ای مردمی متدین خراسان در این هیچ شکی نیست که شما مردمی غیور هستید مردمی دنیا قصه های و قصه‌های و های شما و با عزت و شجاعت شما و با قهرمانی های شما روز شب خود را کود با داستان‌های شما کوتا می‌کند در بین اخشار و جهان عزت شما نام شما مسی آفتاب در میانی اسمان می و مردم شما را به مثال تقدیم می کند شما می داند مگر دیموکراسی برهنه و بی شرم غرب وجدان و ایمان شما را تهدید می کند دیموکراسی به ایمان شما زیان میرساند از عبادت تا پرستی الله جل جلاله شما را به بندگی تواغید می کشاند. اخلاق شما را فاسد می کند پرده عزت و حیار از پیش شما بر می دارد و بدامن سفیدتان داغ سیاه را می زند دیمکراسی خوهرانتان و ودخ دخترانتان را برهنه می سازد و حجاب شرعی را از بین می برد و غیرت تان را ختم می سازد تحت نام بیان آزادی در داخل خانه دعوة يهودي السلبي ونظام سكل الرغائج مي کند ديمقراسي بغيرت و بشرم و برهنة بخاطر بدست وردان اهداف اهداف خود همت عليا الشمارة طاين مي سازد ديمقراسي همت اسلامي عليا الشمارة بخاك يقصان مي کند ديمقراسي اخوات اسلامی را از بین می و برنگهای قومیت و وطنیت و سمتیت و زبانیت و بغفرهای مختلف دشمنی و عداوت را ایجاد می کند براه اندازی انتخابات قلابی از طریق حکمت می که سیاست شرعی شماراتا به غرب سازد به اقتصادی اقتصاد غرب و معاملات شما را فاسد می سازد و نظام اقتصادی شما را سود تبدیل می کند و ماله های شما را حرام می گرداند بخاطر بدنام ساختن شما از سیاست دروغیم استفاده کرده در ادارات شما را به اخز رشوت و به بسات آغشته می کند جوانان و جوانان و خواهران شما را به می سازد دین شما را تغییر می دهند که خیلی احکام حلال را حرام و حرام را حلال می گرداند دیموکراسی می که بعضی از اصول دین را از بین بورد مثل جهاد و جزیه و غنیمت پرده شریعه و دیگر این قسم احکام را و به نام سلح و به نام عدالت اجتماعی و با اشعار دروغین بی دینی را رائج می سازد دیموکراسی بتوتی های گناگون میکروب زهر آلود خود را در معاشرائی تان پخش میکند. الحمدلله. من بعد الله سبحانه و تعالی بفضل و کرم خود حرکات این بوتها را توقف داده است الله رب العزت بخاطر شکستاندن این بوتهای دیمکراسی فوج خود را بلند کرده است که شیر مردان خلافت اسلامی که به دمام ابعاد جهان رسیدن و حتی شیر مردان خلافت اسلامی به دروازه های قصر سفید رسیدن و غرور امنیت آمریکا را زیر زبر و به خاک یکسان کردن ای برادران غیور و شجاع بیایید بالای خودان رحم کنید و تاریخ گزشته آبا و اجداد خود را زنده کنید قسمی که شما به شکستاندن بوتهای وقتی دیگر پیش قدمی کرده بودید عجله کنید به شکستاندن بوتهای دیمکراسی قدمهای خود را بردارید و اقدام نمایید تا دینی دین خالص الله بالای این سرزمین جهان قائم شود بیایید باشی مردان خلافت اسلامی خود یک جا شوید وبالخليفة مؤمنين خود بايعات نمايد والصداي أسير وتاريخ أسير خود راه حفظ نمايد أي نوجوانان شجاع خراسان والله العظيم ان ديمقراسي بشرم وبرهنه شما وطاريخ شما راه طرف بدنامي ميكشاند شما را صرف بخاطر اهداف خود استعمال ميكوناد شما استفاده ميكوناد ديگر ديمقراطان غرب زدر راها كونيد دیگر دیموکراسی برهنه رها کنید دیگر از این افکار فروخت شده غرب دور شوید و از گرداب این افکار خود را نجات دهید و بس سایه خلافت اسلامی پنا بیاورید تا که زندگی شما تأمین شود و اینده تان بهتر شود ای علماء کرام و دانشمندان که در زیر چتر نظام های طاغوتی زندگی می کنید و با همرایشان یک جا بود باش می کنید. شما با افکار دیموکراسی و با نظام سیکولر مشروعیت ندهید باید عجل نماید با کاروان شیر مردان خلافت اسلامی وصل شوید و در رأس کاروان قرار بگیرید ای محسلین و دانش جویان عزیز در زیر چتر بیرغ خلافت اسلامی و مهر نبوت بدون فکر دیموکراسی و نظام سیکولر در فضای پاک اسلامی تحصیل خود را ادامه دهید که تحصیل شما با کیفیت شود و ایمان شما قوی شود ای بزرگان محترم ای اقوام بیاید عجلا نماید در صاحات خلافت اسلامی به رای اقوام تان یک جا زندگی کنید که صف امت اسلامی قوی شود و تاریخ امت اسلامی زنده شود و در نزد الله جل جلاله شما سربلند شوید و نظام الله جل جلاله بالای این جهان قائم شود ای ارگانهای نظامی که شما در چوکات دموکراسی مصروف وظیفه هستید ای اردوی ملی و نوجوانانی که صفوف اردوی ملی جلب جذب شدید ای امنیت ملی و پولیس ملی و پولیس محلی که شما را با این نام هافری داده هست شما را بنام دفاع از وطن و به اشعار درغگین و به خاطر تقوید بخشیدن نظام دیموکراسی کفری دریشی پوشانده و اسلحه داده است شما را دشمنان اسلام فرید داده است و در مقابل دین اسلام استاذه کرده است اگر که شما نظامی های پاکستانی باشید یا نظامی های افغانی باشید و یا ایرانی باشید ولو که هر کسی دیگر باشید شما به خاطر تقوید نظام دیموکراسی کمرهایتان را بسته کردید شما به خاطر تقویت نظامی کفری مرتد شده اید و اکثرتان به نمی فامید والله العظیم بحال شما رحم بکار هست اگر شما به این نظام کفری خدمت کنید به قتل رسانده می شوید و به جهنم رسانده می شوید و اگر شما نکردید در پیشروی الله و اگر شما رها نکردید در پیشروی الله شرمنده می شوید و به جهنم انداخته می شوید بیاید بالای نفسهایتان رحم کنید و در مقابل یک چند دالر یا افغانی و یا کالدار زندگی ارتیداد را انتخاب نکنید و مرگزیلت را قبول نکنید و در آتش جهنم خود را ناندازید مقصد دولت اسلامی تطبیق کردن دین الله بالای این سرزمین است و منهدم ساختن نظام امریکا و برطانیا و روس است. دولت اسلامی صرف دین الله را روی زمین حاکم می کند آن دینی که الله جل جلاله از آسمان بواسطه جبرائیل علیه السلام والسلام بلائی محمد صلی الله علیه وسلم نازل کرده هست بخاطر همین دین شیر مردان خلافت اسلامی اسلحه را برداشتن و خود را فدا می کند و با همرای همه تواغید جیهان مبارزه می کند دولت اسلامی سر کسی را استن جدا می کند که الله جل جلاله می فرماید فوق الاعناق وزربو منهم کل بناد باساس همین حکم الله کسی که به نظام غرب خدمت می کند ولو آن عرب باشد یا عجم اگر که آن سفید باشد یا سیاه ولو که افغانی باشد و پاکستانی و یا ایرانی باشد دولت اسلامی با همراه کسی مبارزه می کند که در زیر نظام کوفی خدمت می کند و صلاحشان را برداشتن و یا توسط قلم بکفر کار می کند و یا بتوسط زبان کفر خدمت می کند دولت اسلامی برایتان اعلان می کند که بیاید استعدادهایتان را در راه الله مصرف کنید اگر شما اسلحایتان را بگذارید و به دولت اسلامی تسلیم شوید پس دولت اسلامی به شما امن می دهد تو به شما را قبل می کند و تمام حقوق شما را ادا خواهد کرد و اگر این خسم نکنید شمشیرهای مجاهدین دولت اسلامی بسیار تیز است که سر شما را از تن شما جدا خواهد کرد والله العظیم سفر جانکیری و اطلاف های روسیه چین و جرمنی جاپان و سعودی پاکستان و هندستان و اتلاف دیگر ممالک کفری هیچ وقت سر و جانتان را امن داده نمی تواند شما خبر هستید که دولت اسلامی در بین امریکا با بارکو و با جواب دادن و قصرهای پاریس را منهدیم کردند و به دروازه های اروپا رسیدن که امروز کفر جهان و امامانشان و لشکرشان از اروپای خود دفاع کردن نمی تواند به سفرهای این مرتدین چه خزم خود را شما اطمینان می دهید؟ چند اختار درگین حکمت مرتد افغانستان و پاکستان فریب نخورید و با تحت شعار لشکرکشی قومی بر عليه دولت اسلامی دلهای خود را اطمینان ندهد، انها به همین قسم شعارهای خود را مردم خود اتمینال میدهند. بلکه این اطمینان نیست به همین شعال شما را به کام مرگ میرساند و شمشیرهای مبارزین دولت اسلامی بسیار تیز است و شما را به عاقب خطرناک می پس بیاید به همرای صلاح دست داشته تان به خلافت اسلامی یک جا شوید که جان و مال تان در امن شود و عزت به شما نصیب شود ای انجنران و داکتران و ادبان و جرنالستان و ماهرین بخشهای دیگر الله رب العزت برای شما استعداد عطا کرده است همین استعدادها امانت الله جل جلاله است امانت الله را در مقابل دین الله استعمال نکنید ان استعدادها را بخاطر خدمت کردن دموکراسی استعمال نکنید در این هششکی نیست که دموکراسی در مقابل دین الله هست و اگر کسی که خدمت با دیمکراسی می کند آن میدان جن را در مقابل الله جل جلاله گرم کرده است. ما شما را دعوت می که بیاید خلافت اسلامی با علای نبوی استوار هست بیاید هایتان را در زیر چتر خلافت اسلامی بکار ببرید که در دنیا از زندگی زلط و غلامی خلاص شوید و در آخرت از عذاب جهنم نجات بیایید ای مسلمانانی رنجیده ای مسلمانانی مظلوم ای برادرانی که تحت اسارت در محبس قرار دارید ای خواهران و برادران شما به خاطر دین اسلام اسیر شدید ای مسلمانان رنجیده و در من و نوجوانان شما که زولانه را قبول کردید بخاطر اسلام شما که در دستهایتان والچک هستن این همه بخاطر اسلام بوده خود را زندانی ساختین اما افکارتان را زندانی نساختین و در زیر توتی غرب نرفتین برای تان مجدمی به این زولانه ها فخر کنید این زنجیرهایی که در پای دست شما هست، این ازادی برای امت اسلامی هست، شما که در زندانهای شرق و غرب، در پشت دروازهای تاریک شب و روز خود را تیر می کنید، شما سنت یوسف علیه السلام را زنده کردید، و این فیام آزادی شما به امت اسلامی هست باور بکنید یقین داشته باشید که برادرهایتان در راه هستن و در حال سفر هستن و در نزدیکترین لحظه شیرمردان دولت اسلامی به این زندانها میرسد و این ها را میشکند و به خاک یکسان می کند و شما را, را می میسازد قسمی که محبس موسیل و عراق و شام را شما مشاهده کردید و یک از عوامل بلند کردن صلاح همین هست که شما را از چنگ این ظالمان رها می کند و با فاملتان بر می گرداند ای برادران اسیر که در محبسهها قرار دارید شما علاقمن با دیدن یک نظر به برادرانتان بودید و با ارمانی دیدن یک از عظای فاملتان بودید این لحظه ها دیگر به پایین رسیده است و عن قریب شما را به همرای فامیل و دوستان بسیار به خوشحالی در داخل خانه ملاقات خواهد کردید ای خواهران و یتیمان و مسلمانان مظلوم و ای وارثین اسیران که فرزندانتان تحت اثارت قرار دارد و شما علاقمند به دیدنشان هستید حالا وقت به این رسیده که دروازه های آن زندانها شکند و در زودترین ایام به همراهی تان فرزندان تان ملاقات خواهد کرد و آن موانع برداشته می شود که بین شما و بین فرزندان تان حائل شده بود ای امت اسلامی ای مسلمانانی مظلوم دیگر های غم و آه با پایین رسیده هست آرام باشید حالا وقت خوشحالی تان رسیده است فعلا کسی هست که از حقوق تان دفاع می کند وحقوق تانرا براي تانمير صانت بإذن الله والصلاة والسلام على آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين